بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام ساز کلاس دوم استاد علی حسینی پناه خب ما در مورد تربیت بحث کردیم برای تربیت عرض کردم خدمتون که تربیت اون فرایند بود با اون توضیحاتی که گذشت تربیت یک فرایند یک اقدام و عملیات بیرونی داره که از اعتاقی بینش شروع می شد انگیزه بخشی و رفتار سازی اسلاحی رو سریع گذشتن چون دیگه جای بحث نده یعنی فرصت بحث نده. تربیت یه فرایند بیرونی داره ما معمولاً بیرون سر صحنه میتونیم تربیت بکنیم یا اطایبینش میکنیم یا اندیزه سازی رفتاش دارم از جوزی ها این کاری که سر صحنه ما انجام میدیم الان دوستایی که اینجا سوال داشتن مثال زادم برای شد یه مثال بزنم چون تفاوت نظام های تربیتی هم با این مثال میشه متوجه می شد مثالی که بعد دوست را زدن اینه که سر کلاس تو مرد گودک یه بچه ای به بچه ای دیگه هم کلاسیش خوراکش رو میده خب یه مادر دیگه میده که آفرین به سر خوبباری که کار خوبی کردی آره کسی کمک میخواست بهش کمک یکی دیگه میگه خاک تو سرت تبچه این نادون تو خودت درست نیستی چرا غذا تو دادی خوراک دادی به این بچه خب ببینیم یه اقدام تربیتی حدف بود، اقدام تربیتی ب از هر کدوم از این مادرها سوال بکنیم چرا این حرف رو گفتی؟ جوابی که بدیدن چیه؟ دارن نظام تربیتی خودشون رو برای شما بیان بکنن. یعنی بچه من، باید کلا خودشون محکم به فکر که بازیر نه بازیر. فکره دیگه، بچه من باید صفحه و کلمه اینایی رو رشت بکنم یه دوباره کمیش رو پران ببین هدف رو یه جور تعریف بکنن روش رو یه جور تعریف بکنن ببناور و الاخر تک تک اقدام هایی که ما انجام میدیم خواه ناخواه تو چارچوبه یه نظام داره تعریف میشه تفاوت عملکرد و مربیان اگه دلخط بکنید برمیگرد تفاوت اون نظام مفهومی که تو ذهنشون هست چارچوبه خیلی که بر اساس اون تربیت میکنه مثل همین مثال خیلی ساده دوتا مادر که زدن براتون یه مربی یه استاد افلاق یه جور داره تربیت میکنه یه استاد اخلاق یه جور دیگه یه مقدار مثال واضحش رو بزنم. ما مکتبهای متعدد تربیتی داریم تو جهان اسلام چون به کسی برنمخوره این داره مصال میکنه اگه بخواهم بیان تو دل آوزه و آقای الف رو بابه مقایسه ب با اما من برگفت باشه از مثلا نقد کردن نالت که اما من ببهی باشه از بیرون نظام ترمی تحبی تربیت شدید مثال بیزنم ما صوفیه داریم که صوفیه ها بیشتر روی چی تنکید دارن؟ روی شناخت تنکید دارن یا روی رفتار یا یه و گدایش آتفه رو کدوم یک یا دو یا سه خب ما سلطنی ها رو داریم و هاوی ها رو داریم که روی رفتار مناسب دینی ترکیب دارن یا روی شناخت یا روی اه مناسب شناخت یا روی محبت کدوم؟ روی یک، روی رفتار یکی از به ما اینام حج آن این خواستگی را دارم آقای وینکور استادی که قصوری صادق شری هستم در برنامه رادیو تلویزیونیشون مثال می‌زنم ایام حج خوب من با صدالدلیل داشتم می‌رفتم بریم داخل برای نماز جماعت خب دم در تراکم جمعیت رو من کپسول تو دستم بود دو تا رو گذاشته بودم یکی کپسول و همدیگه تو دستم بود برای اینکه جمعیت فشرده شد این لباس و دستی نخوره لباسش کسی نشه من اینو گرفتم بالا یا ها شرطی هم رو رو رفت کرد که درم در داده و گفت شرک شرک اونو بده پاییم خب از این داستان که نمیدنم تولیدی که اینا تو زینشون داره چیه که این کفش برواله بالا میشه شک یعنی جز یه رفتارهای خوشک دینی دین رو هیچ دیگه تصور ازش ندارن حالا این چه به باور داشت شرکی هم رشناختی باوردی به اعتقادی این بالا بردن کفش چجور بابر توحید و خدا میاد روی میاد نمیفهمم نمیفرمان خودشون باید جواب بدم ببینید یه سبک تربیتی میاد روی آتفه تنها تاکید میکنه یه سبک تربیتی روی شناخت تأکید میکنه روشن فکرهای ما ببینید طرف نه نماز نه نمه به به و خدا و شعال دینی و مذبه اینا ولی خودش رو موتدین این دینه، رو اینه. چرا چون مثلا اومده چند تا مقاله در مورد مفاهیم دینی نوشت رو اینو؟ تو ذهنش دینداری غیر از همون شناخت دین دارن فراتر از این چی نیست؟ رفتار دینی، عاطفه دینی، می، میل و گرایش دینی، مثلاً خودش مهم نیست. خب یه تربیت روشن فکر ماوردی داریم که فقط روشنافت تاکید داره. یه تربیت صوفی داریم رو عاطفه فقط تاکید داره. یه تربیت فراسه وهابی و سلاطی هم داریم که فقط رفتارهای خوش بی مرز بیرون ببینید هر کدوم تو چارچوبه خاصی داره فکر می‌کنه و نظام تربیتی برای خودش ساخته که اقدامات تربیتی بیرونی رو اینجوری داره نمودشت بذابست میکنه تقریت میکنه یا تصدیف می‌کنه. ما نظام تربیتی که چا الان ازش بحث کردیم این بود اون چارچوبه ذهنی اون نظام مفهومی که برای دوستان چارچوزم من اینو تحلیل کردم اتاق فرمانه اتاق فرمان ارقامات تربیتی عملیات تربیتی الان چجوری مدیت بشه اتاق فرمان میگه که الان بچه‌ها رو دعوا کن الان تشویقش کن الان وادار کن با کار کارو بکنه و و این الان چی کار بکن گاز بده ترمز بگیر کلاچ اینا این که میگه گاز ترمز کلاچ کيه اون نظام مفرومیه که اسمشو گذاشتیم نظام تربیت خب این سوالی که پای تابلون نوشتیم فقه, فقه نظام تربیتی یا فرق نظام تربیتی بذارید یه جواب رو روشنش بکنم ما میخواین فقه نظام تربیتی رو. یعنی یک اون رو در موردش پرس بکنیم فقهی که نظام تربیتی ساز هستش. ما بعد. فقه رو برسونیم که یا برسیم یا هست ما به اون حدی از فقه برسیم که بتونیم نظام ساز تربیتی بشیم خب نظام تربیتی رو ما شناختیم به نظر شما فقه میتونه بیاد نظام رو سر بده نظام تربیت رو چیه؟ حرف فقه اول علم به احکام شرعیت فرعیه از عدلت تفسیلیه این چیزی که ما به اسم فقه میشناسیمش میتونه بیاد ساز تربیتی بشه؟ یعنی فقه میتونه بیاد در مورد هدف تربیت حرف بزنه؟ بیا در مورد مبنای تربیت در مورد اصل تربیت روش تربیت محتوای تربیت بله فقه به معنای ام یعنی این نه این چرا نه یه سوال موضوع فقه چی بود؟ افعال موضوع مخلص. همین فقه افعال مکلفین مکلفی. تربیت کردن من تربیت کردن من فعل من نیست من به عنوان مادر، پدر من به عنوان معلم، مدیر من به عنوان سیاستگزار آموزش و پرورش هم به وزیر آموزش پرورش تک تک امزاه تایید ها بله خیل گفتن ها فعل نیست خوب خوب سوال سوال خوبیه این جواب که من دادم جواب فقه بود درسته نکه شما درسته تک تک اقدام تربیتی ما چون تربیتی فعله چون تربیتی یک فعله پس ما برای اون فعل یه نظر فقهی داریم پس فقه تربیت یه چیزیه که باید اتفاق بیافته فقه باید بیا در مورد تربیت حرف بزنه اما از اون اقدام سر صحنه بدید اقبتر اون نظام مفهومی رو اون رو در نظر بگیرید فقه در مورد اون سازمان دادن نظام تربیتی هم با حرف بزنه یا نه فقه نظامساز ساز یعنی این فقی که بیاد اون چارچوبه تربیتی رو اون قواعد کلی که بر اساس اونها تربیت پیش ببریم اونها رو تبیین بکنه آیا فقه میتونه به اینجا برسی یا نه موضوع فقه افعال اختیاری بود محمول فقه چیه احکام تکلیفی خمسه موجود استحبابه بایی که داعت حرمت و احکام وضعی احکام وضعی اینا محصول فقهی هست فلان چیز حلاله یا حرامه باطله یا صحیحه یا این وضعیت های خاصی رو که فقه تعریف میکنه زوجیت با این شرایط محقق میشه منکیت شرحیتش اینه بیا میام دار بحثا رو نزدیکترش بکنیم خدا احمد کنه شهید ثانی شرعیت لازم برای تصدی منصب مفتی یا معلم مانیت المورد رو ببینید کلی شرایط میاد مطرح میکنه کسی که میخواد معلم باشه باید اینا رو داشته باشه کسی که میخواد مفتی باشه اینا رو فی عدو المفید و المستفید تمام اینا رو داره بیان میکنه تش. یعنی داره حکم وضعیِ اینها رو بیان میکنه مثل این که شما دارید ملکیت رو تعریف میکنید شما کی مالک هستید موقعی که این شرایط رو داشته باشید شما کی زوجیت محقق هست موقعی که این شرایط باشید خب شما کی معلم هستید موقعی که این دیست میاره ایشون کی مدرسید کی مفتین هستید در مقام فتحا هستید نه همه رو بیان میکنه بعد فقه در مورد اینا حرف داره حرفش رو تو خالب یه دستور تکلیفی بیان میکنه یا یه حکم وضعی حکم وضعی هم قشن هدایت کننده رفتار ها و افراد هستش. خب فقه نظام تربیت فقه در مورد تربیت حرف میزنه وایدم بزنه چون تربیت یه فعله اما نظام تربیت چجور سؤال ایشون الان این میشه من جوابی که دادم فقه تربیت بود اما میخواستیم با این جواب فقه نظام تربیت رو ثابت بکنیم آیا فقه میتونه نظام تربیت درست بکنی یا نه دوباره مطرح شد نظام تربیت رو ازده بدید دوباره مرور بکنیم من؟ اه... خب کلن چاشوه بحثم از این اصلاعید ها دیگه خارج شده نظام تهدیه دناصرش چیا بود؟ مبنا هدف روش عصم عوامل موانع محیط ساحت ها اینا همه کنار هم میشدن نظام تربیتی خب آیا فقه در مورد اینا میتونه حرف بزنه یا نه؟ اگه فقه در مورد اینا حرف بزنه فقه نظام سازه تربیت شده اما اگه نه فقهی که ما ازش بحث میکنیم فقهی باشه که صداقی این حرفا نمیره اون فقه نظام سازه تربیت نیست خب واقعیت اینه که فقه تون ارگوی مطلوب باید به این حد به این تمامندی برسه که در مورد اینا حرف بزنه شدنی هست فقه در مورد مبانی میتونه حرف بذارن من بذارید اسلاحیت رو بیام اونجایی که دیگه ادامه برس خودم بود یه مثال در مورد مبانی من میزنم که توی کتاب فقه تربیتی این بحث شده ما در مورد وفای به عهد, به عهد، وفای به وعدهی که به بچه میدید ما دستور فقیقی داریم که وفای به وعده واجب هستش لازم هستش به بچه ها وعدهی دادیم وفا بکنیم و یاد ها وعدتون موهم ففور این رواهدی است که میفرماد وقتی به بچه وعدهی میدید این رو وفا بکنیم یه تعلیلی بعدش میاد خود روایت بیان کنه و این ها میازنون انکم الازین ترزخونه ها چرا این دستور رو فقر و روایت از ما خواسته به ما داده؟ به خاطر نسلش که درواید می‌فرماد. تو دستگاه شناختی بچه شما جای رازق این بچه نشستیم وقتی که به بچه وعده میدی به این وعده وفا نمی کنی آیه پنایان اینا خیلی خوب ترکیم میکنه وقتی این برخورد رو با بچه انجام میدی نگاهش رو به خود تغییر دادی ولی بالاتر از این اینه که نگاه اون رو به خالقش خراب کردی فردای که این دور بزرگ میشه شخصیتش مستقل میشه از تو دینداریش دینداری لنگی میشه اون توکل لازم به خدا رو میبینی پیدا یه دستور تربیتی به ما داد که وفای به وعده بکنه. دلیلش چی بود؟ اون مبنایی بود که اینجا اشاره شده. خب خیلی از احکام و دستورات تربیتی دیگه هم ما داریم که یا علت حکم بیان شده یا نشده. ما یه باور در مورد فقهمون داریم که تک تک دستورات فقهی مبتنی به اون ملاکات فقه هستن. یه ملاکات پشت سرش هست که بر اساس اونها این دستور فقهی صادر شده. یا ملاک رو ما بهش پیدا میبریم یا نمیبریم یا دلیل و فلسفه هکم بیان میشه یا نمیشه اگه بتونیم با اون ملاک دست پیدا بکنیم در واقع ما چی رو پیدا کردیم در واقع ما مبنای مورد نظر رو بهش رسیدیم فقر در مورد مبنای تربیت میتونه حرف بزنه کمان که تو این مثال دیدید میتونه بگیه که بچه ها نگاهشون به مربی، به پدر نگاهشون به پدر و به موربی که اون یه جلوهی از البته این یه تأمین افراتی تو مسیحیت داره که اونو نمیخواییم بگیم اونو اصلا میگن که تو دستگاه شناختی بچه نموز و خدا همون پدره نگاه تسلیسیشون پدر و پسر رو, رو, رو برگدوس و اینا که درگیر میکنن میگن که اصلا بچه پدر رو خدا تصور میکنه بعدها که میده تصورش از پدر یکم تر میشه اما خدا میشه این ها ما بگیم ولی فقر میگه که چرا نوع نگاهی که به شما داره نوع نگاهش رو به خدا بعدها شکل میده پس نوع رابطش رو با خدا شما با این برخوردات خراب نکن. خب ما از احکام فقهی میتونیم به مبانی برسیم به مبانی تربیتی برسیم به اهداف تربیت چه جور بود آیا از گزاره‌های فقهی ما به اهداف تربیتی میتونیم برسیم نظام سازی تربیتی رو در بررسی می‌کنیم؟ فقه میتونه نظام سازی بکنه یا نه بله میتونید برسید اشارات موازی با و فرمانشو بگیریم سعی کنیم این این یعنی چرا؟ این یه مبنا که بچه تصورش رو از خدا با اون ذهنیت هایی که از پدر مادر داشته به دست میاره یعنی کامل می‌کنه اینجوری بگم. بعضی از شناختاش نوع رابطه گیدیش با خدا رو از کجا به دست میاره از اون نحوه ارتباطی که با پدر مادر داشت تو خانه کار شده مطالعاتی انجام دادن کارهای عدد راقمی آماری کارهای تجربی انجام دادن سبک تربیتی پدر مادر رو دیدن به درمادر سهنگیری یا سختگیری یا قانون مداره بعد رفتاً این بجهاد دینداریشون چه شد میشه زمانی مردوز باشن و باشن دیدن اونایی که به در مادر سخت گیرن ما یه روایتی از آقا میدرد حبتی اینا نم نمیتونم خوب تفعیم بکنن ما چون روایتی در اختیار داریم بهتر میتونیم تکین بکنیم. آقا در مهمی فرمان که بندگان سه جور هم یه بندگی خدا رو ب عبید، یه عبادت تو تجار یه عبادت، عبادت و احرام خب اونایی که بچه‌ها رو سخت گیرانه تنگیت کردن به نظر عبادتش، بندگی فردای بچه هاشون چجوره؟ عبادتون عبیده تا آنه همکاری میکرده از فدر آنه میترسید فردا از ترس مثل برده ی زلیل، زرخلی با خودم هم همینجور اعتباس میگیرد، این کار میدانی انجام شده اوزه معناش این نیست که کسی خانواده جلو بود دیگه نمیتونونه بنده خوب و خدا بشه نه آمادگی وزیرش این سبک تبیتی رو پیدا میکنه بچه ای که خیلی روس اینجوری تبیعت شده فردا متوقع از خدا بهش سووا بده خدا انجام میدهثوا نده زیازی روبار میکنه اونی که قانون مدار تبیت شده می که بنده ادتون عبادتون ارا پیدا از خا میده و خیلی عادی تر مطالعه تر هر زمین شد ببینید پس یکی از مبانی رو ما تونستیم از این بردار پیدا بکنیم نوع ذهنیتی که بچه از خدا پیدا میکنه رو من میتونم براش شکل بدم ایجاد کنم این یه مبنا من پدر من مربی من معلم میتونم رابطه بچه رو با خدا منش شکل بدم آمادگی یه سبکی بندگی رو من براش ایجاد کنم این یه مبنائه اصل عبودیت رو من میتونم بیام بهش رنگ و لاب بدم عبودیت ابید بشه دجار بشه یا اقرار بشه عبودیت هدف بود ولی این هدف با چه سبکی محقق بشه رو این مبنا میگه که شما تو مقام تربیت نبه برخوردت با بچه میتونه به شکل بدی خب فکر با دستورات فقریی که میده ما رو به اون مسیر درسته دارتی میکنه میگه اینکه که خیلی بچه ها مثلا هم روز بار نید خیلی هم محرومش نکنید. به اینا بینید. در صورت فقیقی داریم تو تربیتی. تربیاتی. می میبینیم نتیجه چی میشه؟ میشه که اون مبنا محقق باشه. اون مبنایی که بچه چون اثر فضیق از من هست فردا تو دینداریش دینداریه درست و درمانه باشه. آسال بیدیم. دقایی که بله؟ این تو مصر نرواست بود تعلیل آورده بود چون تعلیل آورده بود آره چون تعلیل آورده بود خیلی با قاطعی از ما میگیم که دلیل این حکم اینه ولی یه جایی هستش که اون ملاک حکم به بیان محصوم نگمده ما با یه استنبات قهقره گایی خود میتونیم بهم اون پی ببریم به اون مبناه میتونیم اون پی ببریم برای این اشکال ها در مورد این نحوه استنباط ها هست که یه استنباط کامیه محکم نمیتونیم صد درصدی بگیم که دلیل این حکم این اولا غیر ممکنه این باشه برای چند تا چیز دیگه علت تامنه نیست علت ناوسته بله؟ نمیدونم دستگاه استنباطی ما فعلا نمیدن به این حد رسیده یا نه البته های عرفی خاطرم هست یه بحثایی مطرح می که ما از حکم فقی بریم به اون مبنای پشت صحنه به ملاک حکم برسید تعلیم ها به چه نحوی بیان شده اینا یه فوتو هایی داده ولی بازم به قطعیت نمیتونیم بهش دست بیدا ولی این اجمالاً این رو داریم که از احکام فقی ما میتونیم گاهی اوقات به پشت پردش پی ببریم و اون مبنایی که دلیل این حکم هست رو بیام با بکنم توضیحش بدیم. از نگاه انسان بچه اینجور به تصویر کشیده میشه که خب شناختش متحصر از والدین میلوگیرشاش متحصره و همثال اینا که بعدها توی ترگیت بچه اثرگذار سرگزاره است. هدف رو ما میخوایم همه اناسال نمودش بس بکنیم. <تصفيق> وقت ما سریع داره میگذاریم. ما در مورد هدف اناسال دوم نظام ترگیت از فقیق میتونیم استفاده کنیم؟ من این مثال اتفاقاً از صحبتهای پناهیان دارم. شما احکامی که توی محیط خانواده تمامولات خانوادگی آمده صادر شده از شورای مقدس اینا همه رو کنار هم گذاشت. می‌بینید که از همه این احکام کنار هم دیگه نگاه کردن شما به این جنبنده می‌بینی که محیط خانواده این شکلی گرفته که آرامش روانی مثلا مثلا میگم شاید این تمام حرف نباشه. آرامش روانی و عاطفی برای همه باید تامین بشه. فولان ارقام یک یک نگاه کنید دارید میگه حق نزد نسبت به این موضوع افسار بکنه که اون آلاویش آرابش به آن بخوره اون دستور دوم یه جوری داره فرش میزنه که فلان جنبه آلاویش تام متزلزل بشه همینجور احکام کنار هم میذاریم نگاه میکنیم بینی از تمام اینها یه برداشت کلی میشه که خانواده برای این هستش که فلان هدف درش محقق بشه از احکام فخری همینجور که ما میتونیم به زیر زیربنای اقدامات تربیتی دست پیدا کنیم به مراکات برسیم به اهداف اون نقاط نهایی هم میتونیم فلش ها رو پیدا بکنیم که نظام خانواده با هدف چی هست از نگاه اسلام؟ خب، در مورد تربیت بچه هم همینجور، در مورد مراهد تربیت باستی alunos میره سوال کتابای تنبیه و تربیتی مراحل زندگیات رو از اینا سوال می‌کنه خب میگن یه دوره کودکی اولی است کودکی سالویه است دوره مثلا قبل بلوغ هستش دوره بلوغ هست دوره, دوره بزرگسالی و فلان و فلان تقسیم بندی‌ها می‌بینیم از نگاه پیاژه مثلا یه جور تقسیم می‌کنه دوره فلان و فلان و فلان بر اساس اون مراحل شناختی هر کدوم هر کدوم از ذهن خود چه دیاره این داستانه تربیت ها رو یه جور صفبندی میکنن سراغ فقر بلید به نظر شما مراحل رو برای حرفی نداره اینی که مرز کلاس ها رو از هم جدا بکنیم ما بچه ها رو اون خلاسه تیغ جدا کردن چیز رو کجا بذاریم سن بیجگاه دیگه هست چیه؟ یه سری رواید میاد روی چند تا سه تا هفت سال میکنه. کنه که این هفت سال روی تربیت مقتهای خاصیه که رنگ و ناوه و حقوقات تربیتی یه اول یه جوره دوم دو یه جوره سوم یه جوره یه تقسیم بندی های جزئی تری داریم ما خیلی از احکام ما مربوط به قبل تمیزه به تمیز که میره احکام میبینین متفاوت بوشیم مساعده تربیت جنسی اگر با این نگاه بریم سراغ احکام فقهی سراغ رو فرق میبینید که فرق میبینید در مورد مراحل تربیت هم حرف میزنه میگه تا تمیز یه مفرس نمید اصلا دوره رضا بریم قبل از اون دوره هم از نگاه اسلام و از دوره دوره هم خودش یه دوره تربیتی یه دوره مهم تربیتی هم است از سعید و سعید فی بطن و شقی و شقی فی بطن علت کی بندومه دوران امامتگی است یا دوران انعقاد نطفه است تمام اینا منظور اینجا هستش واسن این یه مرحله مهم می شه یکی اون متربی اون دوره تربیت هست خیلی قبلتر از اون ما روایت داریم که مفاهات اختار ولنوتفکو بله بچه‌ای که قرار بعدن از شما به دنیا بیاد دقت بکنید حصرانه خوب انتخاب بکنید همسری خوب برای خوده تا نه اون بچه همسری خوب اندفاهم بکن که اون بچه ای که از تو برد به دنیا بیاد بچهی با آمادگی و سرمایه بالای تربیتی پس میبین مراتب و مقاطع تربیتی مراحل تربیتی میری سراغ فرم خیلی متفاوت میشه دوره پیش از تولد اصلا توی این نگاه های دیگه اصلا متره نیست مهم نیست اما اونجا دو جا ولی از نگاه های اصنا بیدیم او خیلی دورخیست گرفته قرار تربیت بچه میگه قبل ازدواد بفکر بچه باشد مراحل تربیتی از اونجا شروع بکنه میاد خب بعد به یه مقطع حساس هفت روز اول احکام ویژه تربیتی داریم ما بعدش تا دو دوره شیل خالگی شیل خالگی تمام میشه تا تمیز تمیز تمام میشه میاد تا هفت روز اول که یه مقطع تربیتی هست میاد تا دمدمای های گروه بعد غروب باز تا مقته ازدواج ازدواج دوله نامزدی یه جور هست یه سری اقوام و یه سری دستورات باز دوله ازدواج برمید میاد تا سن 21 سالی یا الاخر این مقته بندی ها کلاس بندی ها یعنی که بچه های قدوم سن برن با هم سن جدا از نگاه فقر میبینید جدایی. خیلی مشخصه که فقر تو این زمینه نظام سازه حرف داره برای گفتن فرق در مورد این که کدون بود از وجود و در موردش بحث بکن حرف داره یا نه چه مواد و چه کلاس برای بچه چه اون کلاس که باید بده توش تحلیت بشه روش بخونه مکتب یاد چیا هست از ذر فرق مکتب مادتی که میری خب رشد بدنی رو تو طریعت بدنی نمکار میکنه رشد شناختی رو تفکر رو توی نمیدونم تفکر و محارت اندیش های جو چیزا نمیدونم اطلاع و اطلاعات عرفی رو اطلاع اهل معاش رو توی درستایی نمکار میکنه چند تا درس میگه که اینا باید بگذر تا اون اهداف لازم تربیتی بلسن از نگاه فرق آیا ساحت ها و عباده طریبیتی فقط اینا فکر بعضی از اینها رو تعیید میکنه اما یه چیزهایی رو قطعا روش خط میکشه، حذف میکنه و یه چیزهایی رو مطمئنن اضافه میکنه به نظام طریب ما طریبیت رخص و موسیقی و چیزها رو تو فکر ما جا نداره چیزی که الان دارید میدید دارید میدید تو مهدی بوده ها کم کم این دارید دارید ولی در مقابل اون چیزی که قفلت شده تو نظام تنین تربیت موافق در موردش مفصل بحث داره چی ها هست؟ مثال بزنید بعضی از ساحت ها بعضی از عرصه های تربیتی که قفلت میشه و فقل در موردش حرف داره چی مثلا؟ روزی حالا تو ترگیت اقتصادی هست ولی تو ترگیت اقتصادی اونام دارن اقتصاد سه همستایی که هست ادعاهای اصلیشون اینه که میگن ما چند تا تو آموزش رو بهش ننبال میکنیم ترگیت سه همستی یه چیش اینه که بچه با عقل اقتصادی بارگیره پس اونام داره. ولی اسلام یه خط و خاصی اونجا مزرم یه بردار متمانز از اونها هست نه من در مورد کلیتی یک ساعت ترگیتی که اصلا بهش فکر نمی کنم دینداری گفتید البته بعضی در مورد دینداری بحث داره خیلی مشخصترش ترگیت عبادیه ترگیت عبادی رو نماز آموزی لندگی خدا ما توی احکام فرقیمون مفصل در مورد اینا بحث داریم اگه فرصت بشه گفتم یه ساعتی رو میریم مثلابی در مورد نظامش بخصیم کنیم نماز آموزی اگه فرصت بشه میبینید مفصل تو احکام احکام و منابع فخریمون آیات رو باید در مورد اینا بخص ولی تو نظام تربیت و نماز آموزی و تربیت عبادی و, و تربیت دینی زیاد پرنه این اصلا بهش توجه نمیشه خب فقر نظام تربیتی برای خودش داره یه سری مبانی رو میاد که ما میفهمونه البته فقه اصرار نداره این مبانی رو بفهمونه تو آیات رو باید مدنظر هست پشت صحنه این دستور که از آیات رو باید ما میگیریم اون مباناهای مدنظر شعر مقدس هست حالا یه جایی این رو بیانی میکنه یه جایی برای نمیکنه. ولی مهم اینه که بر اساسی یه مبنای این دستور رو با ما خب فقه میتونه مبناساز باشه، فقه میتونه هدف ازش انتظام بشه. فقه مراحل رو برا خودش اونه متفاوت تعریف میکنه. فقه ساحتهای خاصی رو برای ما مسرح میکنه. خب بریم سراغ یه لایه های دومی از تربیت. اون افعاد متفاوت از تربیت. یه بخشی از نظام تربیتی ازور بود و دیگه چی؟ روش های تربیتی. در مورده اصول نره بشه هم حرف به نظرتون یا نه؟ <تصفح> بله <تصفح> اصول تربیه مثلا تدریج شما تربیت میکنید، میکنی تغییر ایجاد میکنید در متربی این قدم قدم باشه به تدریج باشه یک باره نفه ادامه بشه این اصل تدریج. اصل تناسب مثلا این که که میدی متناسب با متربیت باشه شاید خب تو مفصل در مورد اینو حرف چیزی که آموزش‌هایی که میدید در حد توان مخاطبات باشه بالاتر از سطح فهمش بهش چیزی نگو بالاتر از سطح فهمش کلاس رو براش تعریف نکن این اصل تناسو اصل تدریج اصل جامعیت تدریج کاری جامع باشه چیزی رو فروازار نکنی از اقعاد وجودی و اینا اصل هست فرق نموان این اصول حرف داره یا نه خیلی روشن هست این ها مفسد ما یا زرباید داری تدریج بده دارید یه باره تلاش نکن که اون رئس ساله رو خودت یعنی این نباش چرا امامگیار ایجاد کن یه جا خدا فزلتنی که مقامات جذبی که ساعت قبل ازش پس کردیم یکی از مضامین اذه ما هستش که خدایا با من اینجوری برخورد کن وسیله خلاصه پله پله بالا رفتن اونادر یه بالو رفتگی درات از اونای که بالا ما رو برسون می که مقامات جذبی ولی یه قاعده کلی تربیتی نیست از اعمه در مورد فرزندان امامشون ما داریم که امام بزرگوار امام بزرگوار رو یادم رفته امام, امام سجاد هست مثلا تو فرزندشون امام بفر یا امام بزرگوار دیگه میگه که این آقازاده عبادتی سنگینی رو بر خودش تحمید میکنه امام پدرشون رو برمیگردن میگن که فوق و ما عراکت بیشتر از اون چیزی که تحمل داری با خودت به دیگه رفتار میکنی. نه یه مدار که تدریج تناسب اینا اصلا مفصل در مورد اینجور چیزا ما آیات باید داریم گذاره های فقیه داریم پس در مورد حصول بیورو برگر حرف داریم در مورد روش ها چجور اینجا هم که دیگه, دیگه از هر من از که فقیه در مورد روش ها حرف داری. این که تشریح بکنید تنبیه اینجا جای تشریح اینجا جای تنبیه اینجا نه فلان کار کار بکنید پس بینید که فقه عناصر نظام تربیت در موردشون هفت داره یه جاهایی هفتش خیلی شفاف و واضح مثل دعوا مثلا اصول یه جاهایی کم تره تو ساحات شما باید با تلاش بکنید ساحات رو پیدا بکنید تو مراحل یکم باید تحلیل بشه تا این مراحل استخراج بشه تو و اهداف می‌دین که خیلی دلقت باید بشه خیلی انتظاهی‌تر از احکام‌الفقی ما باید اینا رو تلاش بکنیم به دست بگیم البته تمام اینها بنابراین این بود که این که ما حاضر شدیم بس بست چه فقری باشه؟ ما دو تا فقریم از و تعریف اینا چیه؟ فرقه به معنای خاص که احکام رفتاری ازش استنبال میشه این فرق اخلاق نیست اعتقالات نیست این فرقه از که فقط دماده رفتار هست مناسی دینی و افکار دینی اما افکار اشپر یا فهم دین با کل آدو زبایی ما الان تمام حرفای که زدیم در مورد فرد فیرن نظامساز فرد اصغر نظامساز بود یا فرد اشپر نظامساز بود؟ اشپر نظامساز اصغر نظامساز بود ما از ظاویه محدود فقه ازغرب اضافت کردیم در مورد نظام تردیر کنیم احکام لفتداری ما ازش میشه من برای استفراش کردن ازش میشه هدف استفراش کردیم این هم آخر مراحل سالها رسول داریشو این تمامش نگاه به فقه مانگاه ازغرب اقردیش بود اما فقه اچبر ایش حقی در آنش ننبید فقه یعنی اون فهم کل دیم کل دین توش اعتقاضان هست، که هست، وقتران هست، خب وقتی میری صورت در وایاتی که داره گذارهای توصیفی رو بیار کنم خب که انسان موجود اصلا اینجوری هست علمون نفس اسلام درمان در که انسان چی هست، نیچی گشتی هست کامل اونجا ما ناظر نیست دستوری پیدا کنیم دستوری تط به مبناه رو بسید. نه مستقیباً این علم و نفس روایاتی در مانده نسان برس می‌کنند. عدده که در مانده نسان برس می‌کنند و مقاله رو پس این حرف‌هایی که زده شد براور فکر اصغر و تأثیر آنها در نظام تربیت بود. تا اینجا من کردیت بخص رو خدمتون تقدیم کردم. اگه متماهل باشید ما بریم صلاح به نظام تنبیت عبادیا، نظام نماز آموزی. آیا فقه، ما گفتیم فقه میتونه نظام ساز باشه. بیاد مرمانی تنبیتی رو یا رد بکنه، یا تعیید بکنه، یا اصلاح بکنه، مرمانی بیایی چیزی نوع بیاره. اهداف رو هم اینجور برده هست، اصول و حصول ردش ها می‌تونه بیاد نظام طریعتی ما رو فقر میزونش بکنه، یه جایی شکم بکنه، یه جایی زیاد بکنه، یه جایی رو به باری کرده حقه درست نیمزه اما این مصداقل اتفاق افتاده یا نه، ما جایی تونستیم این نظام رو تحمیل بکنیم یا نه، توی نماز نمازماموزی موقعی شما بخواید خیلی راحت میشه نظام فقری رو اگه آماده هستید، می‌خوایید بشترین دیگه من بدم سراغ استراغیت سراغ، خب، من اسلاید رو میخواستم ساعت اول ناموش بکنم این استراغیت تا آخری ساعتی دوبار ناموش کردم دیگه استراغیت که مربوط نماز آموزی هست یه وقت کم برایش بود. همون که یعنی کتاب فقه یعنی فقه دیل. فقه اعتقادات هم یعنی فهم اعتقادات هم داخلش هست فهم اعتقادات هم داخلش هست فهم اخلاقیات هم داخلش هست. فهم رفتار های هم داخلش یک <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد دین یعنی باعد رفتاری دین رو فقه اصفرد باعد شناختی دین رو میگه برد اعتقاداتوان فقه از غرف میگه سوالات اعتقادی تو برای از متقدم سوال رو کن. اما اگه فقه رو منای اکبر بگیرید اون چیز که توی رو باید نست اعتقال این منای فقه از اکبر کسی میاد خدمت پیامن میگه آیه نازل آیهی در جمعه نازل شده یا نه میگن برای آیهی نازل شد که میخونم فهمن یه همه مثال زلطه قایدان یرا و من یامو داده دادا شاندان این آیه رو میخوانند میگه یارس حالا برام بس دیگه همون از مجلس پیامبر خارج میشد پیامبر میفهموند که خرج بعد اینا فقيه خارج شد طلبه بود اونم پایله آیه فقیه شده رفت هر که از این باید بفهمید فهمید هر این باید رو فهمید این الان فتوا از پیامبر نه ها که هم باورهاش رو درست کرد هم هنگیزهاش رو تکلیت برای دین داریم و هم رفتارها رو بهش آموختی رجمان هم دید خراج رفتی کنیم هر چیزی که از باید میگیره و گرفت و رفتی خب این از کلمیت فقه نظامسازی فقه میتونه نظامساز باشه حالا داریم صلاح نماز آموزی اگه ما دستورات دینی رو در مورد، دستورات فقیر در مورد نماز آموزی به این مورد رو کنین، دقیقاً میبینید که این رسالت نظامسازی رو فقر انجام دهد. سلامتی تقدیم روحه، انعامی تقدیم، و کوئی کوئی محمد الله خیلی بر انگیزه بشته. اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزی فن تحمصوز از خواله ایشون میکنن که فهمیدون بهشتی که توش نماز نباشه که بهشت نیست بله نماز رو اونا فهمیدن چیه از این بزرگبارشون هم تأکید داشتن به نماز حالا جایگاه نماز رو دارید توی تا دیمی دینی من از این مقدمات می چون وقت واقعا من از دست ما وقتی عدلده نماز آموزی رو میگم بررسیش میکنیم. دیگه اجمالاً دیدید که آیه به قایه دستور آیه دستور رو به نماز. روایاتی که برنامه نماز آموزی به بچه ها رو به تفسیل توزیل. ده. داریم که میگه سه ماه و هشت موز شد این کار بکن. بعد مثلا شد ماه این کار بکن. سه سال شد این کار بکن. به جز برنامه نماز آموزی و بچه ها رو اینجا بیدیم توضیح بیدیم. و سیده محسوم که در آموزش نماز چه کارایی انجام میده، میدارد. اینا ادله نماز آموزی هستش. اینا را ما کناره هم بگذاریم احکامی رو در مورد نماز آموزی و بچه ها به دست میاریم که اینا رو دیگه اینجا مجالش نیست. میگذار آموزش این عدده رو به یکی یکی ما تحنیم میکنیم دقیقاً میبینید که اناسر نظام نماز آموزی در مجموعه به دست میاد. شما هنشیر داره باید تو دلیل فقی رو اجمالاً مشاهده کردید که بارد بست نشدید چون فرصت نبود از اینها می‌بینید که چیزهایی به دست میاد. مثلا این عدده ما بیم با نگاه این که چه کاری از ما خواستن نوع وزیفهی که از ما خواسته شده در نماز آموزی این روایت رو بیمید تحلیل بکنید و زمانی که این کار رو از ما خواستن میبیدید شما هم محتوای اون تربیت عبادی نماز آموزی چون مشخص میشه هم مراحل تربیت عبادی نماز ما وقتی لوازم بررسی می‌کنیم، ادله فکر رو در نماز بررسی می‌کنیم، یه سری کارهای تمیدی از ما خواسته شده، یه سری وظایف تعلیمی از ما خواسته شده، یه سری وظایف امره و دستوری از ما خواسته شده، یه سری وظایف مؤاخذه‌ای و بازخواستی و یه سری شدت عمل در نماز، تنبیه و واقعیت رو بعضی میان میاد این تنبیه رو یکمی کمی روشند فکر معاوی میکنند این یعنی تنبیه یعنی هست نه ما رو بارد داریم تنبید ضرب به کار رفتیم این برنامه رادیویی دادیم معرف یا خود قم داری میشه برنامه فقر زندگی ضرب شد اون برنامه منایی که دوستان همزیم در مورد اجباره بر نماز های پدر و مادر تو تربیهت دینی بچه رو باید مجبور بکنن یا یعنی نه اجبار و اجبار در تربیه ده یا نه؟ یعنی؟ ما منتظر ببینیم هنچی برنامه های دیگه و بعدی همه تبش شده این برنامه که نشد. من یه بار دیگه رفتم برای برنامه زد بشه خبر قبل گرفتن برنامه از دست تبش خارج شد. شما این حرف زدی که به مردم خوش نمی خیلی روش هم فکری زده شد این ماها که از الزام و اجبار برس میگن نه تو تندیه دیمه خیلی نرم و بود. نه بابا الزام و اجبار داریم تندیه بر عبادت داریم و حتی تغییر زرب رو داریم این زرب رو دیگه نیمیشه یعنی بگید یعنی بگو برو توی اتاق بشین یه ده دهندگه ده فکر بکن به اواغا به بعد رفتارت فکر بکن بعد متفردین شد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> گفت زه فلان نماز رو ترک کرد رو و الا الا صلات نمیدان مثلا صله فلان البته کی با چه شریعتی اینها رو درخواست می‌کنه ببینید تنوع کارها رو تو تربیت عبادی ما داریم یعنی محتوای تربیتی اینها دارن محتوا رو از عناصر نظام تربیتی محتوا من شما میده خب مراحلش چی زمان اینها رو هم ببینید تو روایت گفته تا قبل شیش سالگی کارای تمهیدی تن... خاصی از ما خواسته شده لغمه این پینام اون نهوه برخورده با بچه که ذهنیتشون از خدا به شکل بدید من برمن کارای تمهیدی دیگه ای که توی رواهت هستش یه مراحلی از ما خواستن تا سه هفت سالگی گفتن به بچه یاد بده این نماز بودن. یعنی چی ببینه گفتان منو ببینه از یاد بگیر، عملی یاد بگیر. نماز یعنی این یعنی یه بار اولشونجوری میشه تغییرات را دارم و یه چیزهای رو خون میشه قلعه و خم رو میشه رو خون. این کار رو یاد بگیره فیزیک نواز رو یاد بگیره این, تق... این کار با باید یاد بدیم بعضی رو از این قفلت میکنم بچه ها رو اصلا بعضی متدقیه یعنی ها سندش میاد بالا اینی اصلا توجه به اینکه این باید رو یاد بگیره این نماز سودان باید بدونه اول از این خوندن که اسمش رکوع بعد سجده و فرونا بدونه یه نماز سرعت میلی انجام بده بتونه انجام بده اینو باید یاد بگیره وظیفه امر به نماز رو با تا ما داریم سن 8 سالگی ببینید کارها رو میگه محتوا رو بهت میده محتوای تربیتی مراجعش هم بیان میکنه تو سن فرونی کارو بکن سن فرونی کارو بکن تو 8 سالگی رو باید میگه که بچه بگو پاشو نماز بخون تو خانمودهای محتدهی نماز برید ببینید. یه تا شد. یه داری که دیار و خانمودهای اینا. چند نفر بچه رو میگن. همین که بگن پاشو. پاشو الان وقت نماز بگید. زور شده. پاش نماز تو دیگه هیچ راه این گفتنه رو انجام میدیم ما. به باید داریم توی سنی باید بگید پاشو نماز بخون. توی سنی باید محاخذه کنی. باید حساب کتاب بکشی ازش نوای حضرت امام میگن که مثلا دم امام بودیم تو خونه امام ما رو بودید رحمت علیه سؤال میکند که نماز تو خوندی یا نه انا مثلا بین زور تا مرده میپرسی نماز زور تو خوندی یا نه پیگیری میکرد همین که میگفتیم بله دیگه کاری نداشت توی سنگ توی سنگم که میگفتیم بله دیگه تمام شد اینکه پیگیری بکنید، محافظه بکنید. و اگه فهمیدی که با من، با من بودی با هم تو ماشین بودیم از 50 اومدیم ما اونجا هم که پیاده شدیم، تأسیسه وضو کردیم، ما نه تو نفوندی الان داره بلوب میشه. اونجایی که میدونی باید ازو کتاب الان وایلی سمعه تو باید, سم باید نواس با رو این وا داشته. این کلی داستانی گفتن. این چند جون مثلا فرض کن تو مسافرت دیدی. سمت مشهد خب اول وقت نخون تا الانم با شما هستش اونجا همین که بگه خوندم که دیگه میدونی که واقعا نخوندم نه باید کنی بخوندم یه جاهایی بر که نماز دمدمای بلوغ دیگه شما حق تنبیه رو دارید حق نه وظیفه تنبیه رو دارید یعنی که ما می‌گهیم حق تنبیه این یعنی هم غلطه بچه توی یه سنی باید تنبیه بشه بر ترک نماز و یه جاهای تن بعد از لبایت فهم محلوم، محلومیت تنبیم و معنای آن است. یه جایی دقیقا ضربه اصلا دقیقا ضربه ضربه دیگه چجور کنیم یعنی محلومیت یه قابل هم به معنای محلومیت نیست مشکل اینه که ماها تو توی این لبایت ما بند و با آم دادیم قبلن این چوب طلای تربیت رو که زرب چوب تلایی تربیت رو متاسفانه یه جایی دیگه خرجش کردیم بچه پوس کلاف شده اینجا دیگه اثر نمیکنه اینجا که دیگه به کار می نریش پوس دیگه اثر نمیکنه به خاطر این میگم آقا زر به توی تربیت که دیگه جا نداره نه اگه اون جاهایی که باید خرج بشه این چوب تنای تربیت همونجا خرجش بکنی میبینی که اثر میزه من الان حالا شما در این دیسپلین اونایی که پتانسیل دارن میفهمن مادرها سر شغله الان بچه‌ها رو تا دلتون بخواد تنبیه میکنن که حتما این گوشتر رو باید با خوش خودتون داخل شاید این چوب صدای به طرز تن نواخته بشه سر و صفه ولی خب در مورد نمازتون نزیاد आवाजشون نیست طبیعت جسمی رو आवाजشون هست شدت تأمل تا حد آخر اعمال میشه ولی در مورد نماز میبینید که این اتفاق نمی‌افته خب الان ما خیلی خیلی راستین تو دل, دل نماز ها. ما قرار بود. از بیرون نگاه کنیم که فرد سازی بکنه تفسیرات و جوزیت بذاریم تو جو خودشون. این استالی رو میدم پس در مورد نماز آمازی دیدید که فقر میاد وضاعف و محتوی رو مشخص میکنه. فقر میاد مراحل رو مشخص میکنه. قشنگ این که کنار همیزایی میدسند یک خط سیل تربیتی رو میاد ترسیم میکنه. توی عبادت و تربیت عبادی. بعدش آلا زیاد شد. اینا اصلا اول شما بودید. خود این یه بحثه. روایت اصلا بیانشون بیان موذکره بیشتر خطاب ظاهرا پسره. ما قطعا میدونیم که سن بلوغ دختر زودتر از پسره. روی حساب یعنی این ادعاها به تناسب قابل فشارده بشه کردن فاصله سنی بلیان اول یه نباید بلیان باید باید باید مذکر که سر بلیان آقا نباید هم پیشتهاده شده نباید پیشتهاده شده, بشار شده, بشار شده نه نه اه. با توجه به یک قاعده ما بعضی از مقاقه استمبات همون استمبات از یک قاعده ها. یعنی شما دلیل اولی فقی پیدا نمی کنی آیه نباید پیدا نمی یک قاعده فقی دیگه که جایی داری میاد اینجا تقییه تکلیفه بود ما اینجا از یه دیگه داریم از اون بگیم ته سنه دختر فران اینجا هست از اون استفاده میکنیم. که تو دیگه توی دیگه گذشته کار اون موقع داده بگیم پاشه بکن کار خیلی وقت گذشته بله بله نه نه، نه تو واقعا من رو تفسیرش کردم. واقعا زخم. زخمی که شرایطی برایش هست. همین که میونه توی بعضی از احکام شرایط این زخم رو گفته. گفته مثلا بعد از سرخی نلسه تکرار متعدد نباشه. یعنی واقعا زخمی که داره میگه اینو. و تندری با فلستری که دیگه شرح نشودم پیشليس يا مثلا نه واقعا زرد بله این این یه بحث دیگه ببینید این خب شما این سوالی که پرسیدید حالا من میام یه بحث دیگه رو مطرح می‌کنم ا اسنایدش اون اسلاید قبلی بود دیگه گذشتم قاضی کالش فقط بیان احکام اولییه نیست. هر یک وقت موعد احکام ثانویه رو از پیش نمیونه. امثال حج واجبه یا امثال حج حرام. این حرام شدن حج حکم ثانویه. پیام کرونا حج تعطیل شد. خیلی چیزا تعطیل شد. بعد قاضی آم حجت جمهوری خونینه پس اوجو بردش امام چند سال هر جا حرام کرد. حکم سانلیه بود. تشخیص این که امان، اماده و عجل انجام حکم ابدی تموم شده باید حکم سانلیه انتظار بشه. این رو فرقی با تشخیص میده. خب، آیا ارمان واقعا زرد کارایش رو از دست داده. یه مثال وازه تا میذنم. این مثال دوم که میزنم رو باعث نشه شما صورت بشید کم بشید الان این فضای رسامه سنگینی که ایجاد کردن امر به معنیخو از کرد زبانی در مورد هجاب رو روش حساسیت ایجاد کردن تا به زبان بیارید بدتر میاد بگیر رو سریعت رو بدارید پنجسان جلوتت کلن نیمت یه فضای درست کردن نیم رفته با فضای مجازی و رسانویی در افتریفتون هست هست. شیر این چیزا دست مزاهر نیست. البته هست. دو از مردان نمیخوان کنترالش کنند. خلاصه ذهنیت ها و حساسیت ها رو بالا بردن تذکر لسانی الان از کارهای افتاده. و ممکنه. ممکن الان بگیم الان تذکر لسانی توی این موضوع نکنید. باید روشه دیگه یه یا اگه تذکر لسانی هست یه شبهتی باید فرام بکنیم متعدد باشید تو یه منطقه باشید. همینه که میگن ممکنه ها نگید فلانی گفت با زمان تذکر لسانی نیست نه تذکر و لسانی کارا هست کارا هست ولی متاسفانه ما یه جایی باید یه مراقبت میکردیم نکردیم این از کارایی انداختی اثرش کم شده هم. خب تشخیص این که الان این اتفاق افتادیانه رو فرقی با کارشناس های موضوعی کارشناسی موضوعی باید انجام بده و بگی حکم الان عملش بزرسته حکم صانبی باید امتصاد بشه تنبیه هم ممکنه داستانش این باشه آیا تنبیه از کارآمدی و کارهای افتاده و دیگه تنبیه کنار بذارین این رو باید کارشناس دین شناس کارشناس دقیقا مثل بحث روزه دیگه، روزه تکلیف اولیه، الان این روزه به من ضرر داره یا زرار نداره تشخیصش کار کارشناسی میخواد. بله؟ شما چیز که اگر داری داری. این در مورد در اینها میاد اون در مورد عنوان ثانوی عنوان ثانوی هم عنوان اختراعی فقید نیستا لا و لا را را فقه ما گفته لباید باید به ما گفته ولی وقتی شما لا را رو انتساب کنید، داری عنوان ثانوی رو انتساب می‌کنی عنوان اولی داختان نازره و لازره تو ذهن تونه دیگه درخت پرانی رو من تو مال غیر میتونم تصرف کنم حکم اولی دیگه نه اما یه مال دیگری باعث زره به منه اومده گفتیم نازره و لازره اون حکم قبلی من اینجا یه مرغا شد برو درختشو رو بکرم مندازه که باشه ببینید حکم اولی رو فقه گفت حکم دوباری رو فقه میگه ولی این تشکیسش کار کارشناسی میخواه طبعی که کارشناسی موضوعی کرده باید از نظر باید یا تشخیص موضوعش بردی خود فرمیلی مثلا خود مکلم مثل داستان روزه یکی باید بله خب اور زمان زر واپس کر پھر پنک <تصحه> <تصحه> خب اینا فتوه نیست این ها رو آره برداشت های ماست شما اون فتوه عملی چی باید پراشد باید از مرجع تقدید استفتاها بود ولی لباحت زرم هست و زمانش هم زمانهای دمدمایی بود که اگه تک شد میگن انا تکش بایدش محصیت هست من وعداد پدری دارم بایدش میتونم حالا این چیزی که میفهمیم باید استفتاها بشه استفتاها باید بشه و تکتیف راست مرجعه تبدیل دارد بپرسیم این یه نکته نکته دوبارم شما فهمتی که روایت معارض داریم بله ما زرد توصیه همیشه همشهگی نیست انا رو آخرتا این گستتن رو بگیم توی تقاوت آتیش و قطع اوزباینه آخرین را راهند بریم را همینجور که تو تقاوت سوزندن و قطع اوزباین آخرینه توی تربیت هم ظرب آخرین، ولی ما اولین کار استفاده همین که یک کاری خواست نیدین بچه گفت نه سری از ظرب استفاده کن نه هزار و یک راه دیگه داریم یکیش آخرین است. ظربه ما در این اینکه اون برنامه که گفتم پخش نشد آنه یک کم هم دیاده ما بروی رادوی مابلی رو نبریم. ما یه بیستنیقه که انجام داده بودیم اولین موضوعی که پیشنهاد داده بودیم تو است. برای برنامه فکرو زندگی ما ماشیانه برنامه برنامهمون مربوط به نظام اجبار خب این یه سرغی از ما بود دیگه یعنی اولین ارتباط و رو روشناختی که اون‌ها استخرب تا ایجاد پیگیری بود که اخرب بودید باید این کار انجام بدید ببینید چوری نمی‌چسبید دیگه به مخاطب به اوش مخاطبی نمی‌چسبید نه حالا اگه ما مثلا سه چهار تا برنامه اجرا می‌شدون هفته دیگه این رو می‌گفتیم و بعد می‌گفتیم که بعد از نظام هم داریم این جور موجه‌گیری نمی‌شه زیادم را دو معرف رو, رو خلاص میکنم. این اینها تو برد خانواده بود. این هر که زنده شد ما تربیت کردن فرزند رو از اتاق فرمان والدین. خانواده اما تو مدرسه چی؟ در مورد نماز حرف داری تو حاکمیت تو عموم جامعه ببین خانواده وظیفه داره مدرسه وظیفه داره زمامدار وظیفه داره امالیه رسان به در عهد مالک بهش میگن که کل امره لکه طبعا لسلاتک برنامهات رو در تاموره با مردم با نماز تنظیم کن. بگو که یک ساعت قبل نماز مناباد داریم یک ساعت بعد نماز با خوییم یعنی محور برنامه یا جدول برنامه روزانه نماز باشه مدرسه خب برنامه هاش رو کلاس ها رو برنامه و کارها رو با تنظیم بکنه نماز تو برنامه باشه تو خانواده هم خیلی که خیلی میده خی بله، فعلا بحث ما از زاوینگاه خانواده بود چون بحثاش خیلی شسته بفتید. در مورد مدرسه در مدرسای در مدرسای رو زیاد باز نکردیم هم بله؟ مدرسای در موردی نمواز ها موزیکی یکی از صحابت ها و مورد هایی که یکی از حراسای نظام تربیهتی در حالتی مدرسه یکی از اونها هستی درمان مثال خواستم ما تو ساعت قبل به اینجا رسیدیم که نظام تربیتی رو شناختیم اوائل که این دوبانمون دو گفتیم فیق در مورد نظام تربیت میتونه حرف بزنه اومدیم روی نماز آموزی چون در مورد نماز آموزی خیلی درست داریم به خاطر اهمیت ام، نماز در تربیت و شکلی شخصیت انسان زیز موضوعات رو زبایی بحث رو احکام فخری ما برد روشن کردن نمازش حرف زدن مبانی رو قشنگ میشه در نماز آموزی استخراج کردن هدف رو ما رو داریم که اقدامات تربیتی شما در قبال نماز آموزی بچه ها باید به این هدف باشه که نماز رو یه مورد کنی کنم و دیگه تمام اگه بخواهم نظام تربیتی نماز آموزی رو از فرقه از احکام فرقیم، فرقه به معنی خاص. استخراج بکنید اینه که وقتی تحلیل میکنید عدده اون و همون فتروها رو میبینید که مهمترین دستور دینی هستش. خیلی جا کارهای دیگه به نماز باید عقب برید. هدف نماز آموزی رو اون هدف نهایش که قربلایی هستش. کمان انسانی رو قربلایی. اما اون هدف لفتاری و مرموسشه. گفته که شما توی تربیت نماز آموزی تربیت وادی بچه رو باید به عادت نماز برسونیش لیات آب و این که به عادت برسن یعنی از آی امروزی گفته گوشت ولی امروز ساعت هایی امروز جلسه فضلام نیست ایشون خیلی خوب آدت رو توی تردیت تمریل می یعنی چون اون تمامندی برسی اوقدر رفتار برات برای بشه تو وجودت که با تکلف نف نشراغه اگه من بخشش عادت بشه برا دست به وجود میکنم به فهمید میخوام بدن دیین نمیکنم موقع پول دادن نه عادت شده به حتی بخشش نماز آموزی رو رو باید ده اوقدر با بچه باید کار بکنی که نماز خوندن براش عادت بشه. یعنی سنگینی نباشه اون تعبیر امان محلی علیه سلام که هموقت شما ما رو دعوت میکنم استعاقل شما در عرض سنگین میشید میچسبید زمین اینجوری نباشه وقت نمصر جا افتاده تو زندگی من تو سرک زندگیم که تو روش پند بار رو باید برم این کار انجام بدم خیلی از هم انجامش میدارم اصفا هم که این نمیگه اهل سنت این عادت نماز رو برای فرد فرد و امور جامعه‌شون جا اندافتن خیلی راحت وقت نماز می‌شونی نماز رو کنیم زحمتی نیست برای اینکه اینو این رو نماز ولی ما ها با دین بکنیم که آقا به نمازه کلاس رو کن. کنم شو آقا فران رو کن از, بر... از برنامه بوده اگه دل رو کرد که ساخت و بافت جامعه رو جوری ترتیب ندادیم که راحت موقع نماز کاری که انجام بشه، بشه نماز، نه چیزه دیگه. ولی سنت من دقیقا دیدید اونهایی که مناطقی که انسانت هستم و من تهران یادم یه بار تیمنام خب ازان و مرده بروانه، طبعاً یه رو دوتر از ما هستش دیگه. داشتم بیرستم سنده نماز کنیدم، راحت سانیه، اما چمنی که کنار هست دو دو پایین نواز رو دو سه نفلی بودن پایین، این نماز رو مکنه جاید بیش سختی یا تکداخی رو دیلی نمزاری اونا متاسفانه متاسفانه که میگم تحصیل چیز برای دلت مالوان تو نماز پیش دست نماز تحصیل تونستن عادت نماز رو برای فرد فرد جا بنزن. تو زندگی اجتماعیشون هم نماز رو به پیدا کردن ولی ما شیعن متاسفانه تو این زمین نفس داریم خب اصولی رو فقه برای نماز آموزی توضیح کرده تدریج، اثر بخشی، حده که گفتم اگه تحلیم کردیم بعضی از اینا رو میدیدید رعایت تمام، فوق از حد تحلیم بچه بهش چیز نمید نکنیم تمهین، تحلیم، تمرین، محافظه، تحلیم آنبای در اشها بود مده باشم که دیگه دیدن است دیدید که ما تربیت رو تعریف کردیم، نظام تربیتی رو تعریف کردیم. فقهی که میتونه در مورد نظام گفتیم که بله، فقه باید به این سمت بره. هست. ما درکی مون رو از فقه به این حدات برسونیم که این تمام مندی رو بیدا کنیم. تفوق ما تفوقی که نظام سازنده باشه، این نمره تفوق باشه. در مورد یه اقدام تنویخی هم یه نمونه مینیاتوری سازیش رو دیدید. اگه من عدده رو اون رو پسر گفت بگم کردم، می که تمام این اناسا رو یکی یکی از اون عدده استرده شده. خب خودموندان این شد رو به همین ما توفیق بده چون این فقر رو، اونجوری که فقر قیان شده از برسون در این موسنان و این نظر ما هست، بهش علم پیدا بکنیم و اون تمام دیگرازه رو در فقه پیدا رو کنیم و تو فضای تربیتی هایی که مخوانیم اسمان نظره بکنیم، پیدا رو کنیم، برنامه رو کنیم برنامه داشته باشیم متکیه به فقه باشه و فقه هم نظام ساز تربیت شدن انجام رو بتونیم تبنیم و تشریفش کنیم من از تصدیر وقت کافه کنیم نمیخواهیم بیشتر از وقتی که بمیداده جلسه با باهم یرو دهمن زمان توان براف اینجا را جدال یرو تلفیقی رو ترید رو اصلاح و صفحه را بیکرده از و دیدار میکنیم. الله اعلم. الله اعلم. اون اعلم. الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. الله الله تو تو واسه فکر تو ماشین رو نمیتونی سر مان کنی زمان پر شد. آیا اراده؟ خدا کتاب میبینی؟ واسه فهمیدنی در بیاریم که شنبه اینجاست یه که اية که فقط خودش هم در ساختار رو که در و اصلی ما رو قشنگ بیان می‌کنه. یعنی جوری مسیری رو شما که باید می‌رفتید. اگه همین مادر مادر فقهی بود، اونجایی که بچه را باید تشکر میکرد به بخشش تشکر میکرد اونجایی که نباید نمیکرد مثالی که زدن دلیل اینکه ما اقدامات ترمیتیمون درستی سیم اینکه فکر را کنو کار نکرد به خصوص خود نظام سارست بیاد اون چارچوب کردی بره از تو اتاق فرمان رفتارها رو جدید اینو کار از این جهتی که مدیری اتوازی که توحیدی میشه یا ت اگه این اتفاق میفته من این جمله از امام شنیدم هر چی گشتم پیدا نکردم مستند کسبیش بودش. ان